به نام خدا با سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز قسمت دوم داستان دختر بازرگان و هفت برادر به یاد دارید که در قسمت اول گلناز نامادری میخواست نگار رو یعنی دختر شوهرش رو از بین ببره داستان به اونجای رسیده بود که سرخدمتکار با عجله بیرون میره و به دنبال پیرزن جادوگر میره و اینک در قسمت دوم بقیه داستان داستانو براتون تعریف میکنم سرخدمتکار با عجله بیرون رفت و بلافاصله با پیرزن جادوگر برگشت گلناز دستور داد که پیرزن نزدیکتر بیاد بعد بهش گفت زیر کوه بی ستون یا بیستون خواهر هفت برادر زندگی میکنه اگه اونو بکشی طلای زیادی بهت میدم پیر زن جادوگر گفت اول بهم به بگو ببینم این دختره چه کار بدی کرده بعد من پیداش میکنم و میکشمش گل ناز با گریه جواب داد اون زیباتر از منه میل دارم هیچ کسی تو دنیا به زیبایی من نباشه اونو بکش هرچی بخوای بهت میدم پیر زن جادوگر که خیلی طمعکار بود و هیچ لذتی بیشتر از اینکه خون دیگران رو بریزه و دردسر برشون ایجاد بکنه نمیدونست گفت باشه بسیار خوب من میرم و این دختر رو میکشم دامنش رو به دست گرفت و راهی کوه بیسوتون شد روز و شب راه رفت و راه رفت تا به کوه بیسوتون رسید پیرزن جادوگر به خونه هفت برادر رسید. میخواست در بزنه اما اون سگه بهش اجازه نداد و با صدای بلند شروع کرد به پارس کردن. پارس اون سگ نگار رو از خونه بیرون آورد. وقتی پیرزن جادوگر رو دید با خودش فکر کرد برادرها خونه نیستن من تو خونه تنهام ازش دعوت میکنم تا بیاد یک کمی با هم حرف بزنیم سرم گرم شه. به هر حال محض اینکه این دختر دست پیرزن جادوگرو جادوگر رو گرفت که به خونه ببره سگ با ناله خودش رو به پاهای نگار میمالید و مانع میشد که وارد خونه بشه. اما دختر توجهی نکرد. سگ رو کنار زد و با پیرزن وارد خونه شد. اونها کنار همدیگه نشستن و پیرزن جادوگر قصه قشنگی رو برای نگار تعریف کرد بعد بهش یه سیب داد و گفت خانم زیبا این سیب بهشتی میل کنید وقتی که نگار سیب رو دست پیرزن گرفت و خاص بخوره باز هم سگ از روی طرحم خودش رو به پاهای نگار مالید اما نگار توجهی نکرد محض اینکه گاز کوچیکی به سیب زد افتاد و مرد در همین لحظه سگ یه جستی زد و پیرزن و تیکی و پاره کرد و در اول در نشست. ناله می کرد و منتظر بود تا برادرها بیان. غروب وقتی هوا تاریک شد برادرها به خونه برگشتن. دیدن که سگ برای دیدار اونها جلو نیومد بلکه بی حرکت دم در نشسته و با ناراحتی ناله میکنه. کنه. برادرها نگران شدن. برادر بزرگتر گفت آیا اتفاق بدی برای خواهرمون افتاده؟ به سرعت به سمت خونه دوییدن دیدن که خواهرشون کف اتاق افتاده و نفس نمیکشه. سیبی تو دستشه و کنار اون هم جسد پار پاری یک پیرزن ناشناسی افتاده فورا فهمیدن که این پیرزن باید خوهرشون کشته باشه برای همین سگ همونو تیکه تیکه کرده؟ اونا سیب رو از دست خواهرشون گرفتن و به سگی دادن اما سگم سیب رو نخورد بعد سیب رو به طرف یه حیوان وحشی پرت کردن حیوان وحشی به محض خوردن سیب مرد پس برادر مطمئن شدن که سیب سمی بوده برادر جسد پیرزن جادوگر رو توی چاله کثیفی که لاشه حیوونا و آشری کثیف توش بود انداختن و در قله و بالای کوه بیستون از سنگهای ارزشمند و قیمتی یک آرامگاهی ساختن و جسد خواهرشون رو به دقت در یک تابوتی از سنگ ارزشمند کهربا گذاشتن و توی اون آرامگاه قرار دادن هر روز اونا به قله کوه می رفتن و پرده رو از رو و صورت نگار زیبا بر می داشتن مدتا بش خیره نگاه می کردن. گریه می و بعد آرامگاه رو ترک می کردن. حالا هفت برادر رو که دارن در سوگ و ماتم خواهر عزیزشون زاری می کنن و اینجا می زاریم میریم سراغ گلناز گ ناز مدتی در انتظار پیرزن جادوگر صبر کرد اما پیرزن بر نگشت. حوصلش سر رفت. زیباترین لباسش رو پوشید خودشو آراسته کرد و از آینه سهرامیس پرسید میخوام بدونم آیا در جهان کسی هست که زیباتر از من باشه. آینه جواب داد نه گل ناز فهمید که پیرزن جادوگر نگار رو کشته. خیلی خوشحال شد شاد و سرماست پیش شوهرش خاج ابو طالب رفت و با لبخندی ازش پرسید ای شوهر آیا در تمام دنیا کسی هست که زیباتر از من باشه خاج ابوطالب طالب بهش جواب داد نه همسرم هیچکس نمیتونه زیباتر از تو باشه کاش مغز تو زیبایی چهره تو داشت حیف که مغز کوچیکی داری گل ناز خنده ای کرد و گفت مغز؟ مغز؟ مغز چیه؟ آیا تمام ناتوانی من فقط به خاطر یک کمی مغزه؟ مرد احمق اگه دوباره همچن حرفی بزنی چشا تو در میارم؟ حاج عبو طالب گفت شوخی کردم بعد سرشو بین دو دستش گرفت و ناله کرد آه دخترم نگار تو به همون اندازه که زیبا بودی؟ باهوش هم بودی آه نگار نگار خاجه ابوطالب رو در حالی که داره برا دخترش گریه میکنه و گلناز بیرحم رو که سرگرم لذت بردن از زیباییهاشه اینجا میذاریم و از چوپان مراد صحبت میکنی همونی که عاشق نگار شده بود چوپان مراد باور نمیکرد که نگار رو گرگ خورده باشه فکر میکرد باعث مرگ اون باید نامادریش گلناز باشه. اما مراد نمیتونست این سوء زن خودشو به خاج عبو طالب بگه برای اینکه تاجر بزرگی بود که مثل شاه ها زندگی میکرد. اما مراد یه چوپان ساده و فقیر بود. بنابراین این تاجر هرگز به حرف مراد گوش نمیداد و حتما اونو از خونش بیرون میکرد. روزها و هفتهها و ماها و سالها گذشت تا یه روزی چوبان فهمید که گلناز به خدمتکار مخصوص خودش دستور داده تا نگار رو به یک جنگل دوردستی ببره و بکشدهش مراد منتظر شد تا شب برسه چوب دستی خودش که سر اون سه من وزن داشت یعنی خیلی سنگین بود برداشت و راهی خونه اون خدمتکار مخصوصی که اول گفتیم شد از خدمتکار گلناز پرسید نگارو کجا کشتی؟ خدمتکار جواب داد من نگارو نکشتم اونو گرد خورد بعد چوبان چوب دستیشو بلند کرد و گفت به خدا قسم میخورم اگه فوراً تمام حقایق رو برام نگی با این چماق چنان به سرت میکوبم که مغزت مثل دانه های خشخاش به هر طرف پخش بشه خدمتکار مخصوص گلناز دستاشو بالا برد و با ترس التماس کرد اون چماقو پایین بیار تا همه ماجرا رو برات بگم مورا چوب دستیشو و پایین آورد و گفت حرف بزن خدمتکاره گفت گوش بده چوپان گلناز خانم به نگار داروی خوروند بیهوشش کرد و به من دستور داد که اونو به جنگل ببرم و سرش رو ببرم اما من دلم به حالش سوخت و اونو در حالی که خواب بود تو جنگل رهاش کردم و حالا نمیدونم بعد از اون ماجرا چه اتفاقی براش افتاده مراد خوشحال از شنیدن این که محبوبش تو اون شب شوم کشته نشده به جایگاه چوپانان رفت و به دوستاش گفت من به سفر طولانی میرم تا برگشتن من از گلم مواظبت کنید و یک لحظه هم گوزفندهی من ترک نکنید مراد پس از گفتن این حرف جست جستجوی خودشو شروع کرد پای پیاده شهرها و سرزمینها رو طی کرد و هر کی رو که میدید سراغ نگار نگارو ازش میگرفت مدت‌های طولانی رفت و رفت و رفت و کسی رو که از نگار زیبا خبری داشته باشه پیدا نکرد سرانجام در یک غار تنگ و تاریکی پیرمرد ریش سفیدی رو دید و سرگذشت غمانگیز خودش رو براش تعریف کرد پیرمرد وقتی سرگذشت چوپان رو شنید بهش گفت جوان خورشید همه جای زمین می‌گرده و همه جای دنیا رو روشن می‌کنه و تنها اونه که که می‌تونه از محل زندگی نگار تو رو آگاه کنه مراد گفت اما من چطور می‌تونم از خورشید سوالی کنم اون تو آسمونه و من رو زمین پیرمرد گفت خورشید روزها در گردش و شبهنگام به خونهش برمیگرده به خونه خورشید برو مراد گفت اما خونه خورشید کجاست پیرمرد ریش سفید جواب داد خونه خورشید پشت کوههای قفقاز در باغ گلستان ارم هست به اونجا برو و بگو ای پادشاه همه زیبایی ها ای خورشید بزرگ من با یک آرزو و تمنا پیش تو اومدم و اون پاسخ تو رو به تو میده چوپان از پیرمرد تشکر کرد و به افتاد تا باغ خورشید رو پیدا کنه یک ماه و دو ماه و سه ماه راه رفت تا به کوههای افغاز رسید مراد به قله بلندترین کوه سعود کرد و یه لحظه از شگفتی و تعجب مات و مپود شد درختای زیبای حیرت انگیزی توی اون باغ سر بلند کرده بودن و شاخه هاشون گسترده شده بود گلهای رنگارنگ و زیبا با و بوی دلنشینشون هوا رو خوشبو کرده بودن و پرنده های چکاوک آوازهای زیبا و شورانگیزی میخوندن اینجا بهشت بود و همه چیز با زیبایی خیر کنندهای میدرخشید چوبان فریاد زد ای خورشید بزرگ ای پادشاه زیبایی ها من با امید و تقاضایی به نزدت اومدم در همون لحظه آسمون با یه نور خیر کنندهای درخشان شد و خورشید از پشت یک تپه طلایی و زرین گفت ای چوپان تقاضای تو از من چیه چوپان گفت ای خورشید زیبا هفت ساله که از محبوبم نگار خبری ندارم التماس میکنم به من بگو اون کجاست خورشید جواب داد من نمیدونم اون کجاست شاید ماه بتونه به تو کمک کنه مراد گفت اما من چطور میتونم ماه رو پیدا کنم؟ خورشید گفت تو هفت روز و هفت شب از میان و وسط این باغ پیاده برو اون وقت به یه تپه نقره رنگ میرسی به نوک اون تپه برو و همون طوری که منو صدا زدی ماه رو هم صدا بزن و ازش بپرس که مشروعی تو کجاست؟ فراموش نکن که ما وزیر خوبانه چوپان از خورشید سپاسگزاری کرد و راهی را که بهش گفته بود در پیش گرفت و رفت روزها و روزها راه رفت تا سرانجام به تپه نقره ای رسید به قله اون سعود کرد بالا رفت و فریاد زد ای وزیر خوبان ماه زیبا به امید و تقاضای نزد تو اومدم ماه فورا از میون ابرهای سیاه بیرون اومد و گفت ای چوپان تقاضای تو چیه؟ مراد گفت ای ماه زیبا هفت ساله که نگارم محبوبم ناپدید شده استدعا می کنم به هم بگو که کجا میتونم پیداش کنم ماه گفت ای چوپان من نمیدونم نگار تو کجاست اما باد در سراسر جهان گردش می کنه شاید اون بتونه بهت کمک کنه مراد پرسید اما کجا میتونم باد رو پیدا کنم ماه گفت سه روز و سه شب تو این با پیش برو تا به کوه بزرگی میرسی به قله اون کو سعود کن بالا برو و همونطوری که منو صدا زدی باد رو هم صدا بزن و بعد ازش بپرس که کجا مشروغتو پیدا کنی فراموش نکن که باد پهلوان پهلواناست چوپان مراد بعد از تشکر رحصه دیدار باد شد سه روز و سه شب راه رفت تا سرانجام به کوهی رسید از کوه بالا رفت و با صدای بلند گفت ای پهلوان پهلوانان باد نیرومند با امید و تقاضای پیش تو اومدم و ناگهان توند باد وحشتناکی وزیدن گرفت و همه چیز به لرزه در اومد. باد پرسید ای چوپان تقاضای تو چیه؟ چوپان گفت: ای باد جسور، هفت ساله که نگارم محبوبم ناپدید شده، استدعا به هم بگو که کجا میتونم پیداش کنم. باد جواب داد: معشوق تو در تابوتی کهربایی و در یک آرامگاهی از سنگ مرمر بالای کوه بیستون هستش. و برای همیشه اونجا خوابیده. مراد از باد تشکر کرد و راه کوه بیستون رو در پیش گرفت. اینکه راه کوتاه بود یا دراز کسی نمیدونه. اونقدر رفت و رفت تا سرانجام به دره تاریکی رسید. ناگهان طوفانی اومد. رد قرید، برق درخشید، زمین لرزید و در تاریکی چهره هفت دیو غول پیکر دیده شد وقتی چشم اون ها به چوبان افتاد از همه طرف بهش حمله کردن اما مراد خودش خودشو از دست نداد چوب دستیشو بلند کرد، دور سرش چرخون و با یک ضربه سه دیو رو چونان به زمین انداخت گویا هرگز زنده نبودن چهار دیو دیگه هم که وزر و وخیم و بد دیدن فرار رو برقرار ترجیح دادن مراد اونها رو دنبال کرد دومه یکی از اونها رو گرفت پرید و سوارش شد دیو در حالی که عشق میریخت التماس کنان گفت ای پهلوان منو ببخش از مرگ من بگذر هر کاری بگی برات انجام میدم مراد گفت منو به قله کوه بیستون به آرامگاه مرمری ببر اونجا تو رو رها میکنم و میتونه پیش بچهات برگردی. دیف فورا به آسمون پرواز کرد سفر هفت ساله رو در هفت روز به پایان رسوند و چوپان رو به قله کوه بیستون به آرامگاه مرمری برد. مراد گفت: حالا آزادی، برو. دیف به هوا بلند شد و ناپدید شد. چوپان مراد وارد آرامگاه شد. به طرف تابوت رفت، روبند رو کنار زد و نگار زیبا رو دید. اون با چشمهای بسته و دهان چفت شده دراز کشیده بود. دستهاش سرد بود دیگه خونی تو رگاش جریان نداشت مراد با ناامیدی به سرش زد و با صدای بلند گریه می دلش میخواست خودشو خودش رو بکشه و برای همیشه کنار مشروقش آرام بگیره اما شنونده های عزیز من از اونجایی که داستان طولانیه باید یکم صبور باشیم داستان و فعلا تا همینجا نگه داریم و بقیه داستان رو در قسمت سوم براتون تعریف کنم. امیدوارم از این داستان لذت برده باشید و در قسمت بعدی در باقی داستان منو همراهی کنید تا ببینیم چه بر چوپان مراد و نگار و بقیه شخصیت آم بنابراین،